هرچی تلاش میکنم و به انا امریزی میکنم وقت هم تنظیم نمیشه یه وقت یه تنظیم تنظیم اداریه که مثلا از ساعت یه مبدعی باید شروع بشه کار و یه انتهایی هم داره یه نظمم نظم, نظم شرعیه آدم متناسب با اون چه وزیفه عمل کنه مثلا از آن میگن شرعن وظیفه است که بنایش آدم محیا بشه برای نماز اگر کسی با شر وقتشو تنظیم کنه خدا خیلی کمک میکنه